داستان دختر شاه پریان نوشته لورد دانسنی ترجمه دکتر آرش هجازی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش بانوبنفش بخش 28م فاسلی درباره شکار اسب شاخدار هیچ کس در ارل چندان مشغول نبود که برای دیدن آن جادوی تازه رسیده و مقایسه جنها با تصویری که از آنها در خیال داشتند نیاید مردم ارل و جنها خیره به هم مانده بودند و شادی شگرفی به پا شده بود چون همان گونه که همواره در مورد ذهن‌های بابار بار متفاوت رخ میدهد، هر کدام به دیگری میخندیدند و جنها کلاه‌های رسمی بلند، پوشاک عجیب و چهره موقر روستاییان را کمتر از آن خنددار نیافتند که روستاییان شیوه های گستاخانه جنهای برهنه را مسخره میدانستند و اوریون هم آمد و مردم روستا کلاه‌های باریک و بلندشان را از سر برداشتند و هر چند جنها میخواستند به او هم بخندند اما لرولو تازیانه اش را یافته بود و با آن انبوه برادران گستاخش را وادار کرد به اوریان احترامی را بگذارند که در سرزمین پریان به خاندان سلطنتی میگذاشتند. ظهر شد و ساعت نهار فرارسید و مردم از لانه سگها روی گرداندند به خانه هایشان رفتند و همگی سپاس گذار بودند که سرانجام جادو به ایرل آمده است. روزهای بعد سگهای اوریون دریافتند که دنبال کردن یک جن بیهوده و غریدن به او نابخردانه است. چون جنها جدای از سرعت پریانهشان می توانستند از بالای سر سگها بجهند و هنگامی که به هر کدامشان تازیانه ای داده شد می توانستند غریدن را با چنان هدفگیری دقیقی پاسخ بدهند که هیچ کس بر روی زمین نمی توانست با آن برابری کند. به جزانهایی که پیشینیانشان نسلهای متوالی تازیانهی برای تربیت سک ها حمل کرده بودند. و یک روز صبح اوریان به کبوترخانه آمد و زودتر از هنگام لورولو لو را صدا زد. لورولو لو جنها را بیرون آورد و به ی سک ها رفتند و اوریان درها را باز کرد، آنها را از میان تپه ها به شرق برد. سکه ها در کنار هم حرکت می کردند و جنها با تازیانه هایشان در کنارشان می دریدند. همچون گلهی گوسفند که توسط زکه های گله در میان گرفته شده باشند. به سوی مرز سرزمین پریان رفتند تا هنگامی که عصف شاخدار از میان شفق آمدند تا شامگاهان از سبزه های زمینی بخورند آماده باشند. و هنگامی که غروب ما آغاز به تخدیر هایی که میشناسیم کرد، به سرحد شیری رنگی رسیدند که این را از سرزمین پریان جدا میکرد. و هوا که تاریک تر شد، در انتظار آب‌های شاخدار عظیم کمین کردند. هر سگی جن خودش را در کنارش داشت که دست راستش را بر شانه یا گردن او گذاشته بود و نوازشش میکرد، آرامش میکرد و بی حرکت نگاهش می‌داشت. و در دست چپش تازیانه را نگاه داشته بود. این گروه غریب بی حرکت لحظه شماری میکردند و به همراه غروب تیره تر می شدند و هنگامی که تاری و خاموشی زمین به حد مطلوب عصبهای شاخدار رسید آن موجودات عظیم به نرمی آمدند و پیش از آن که جنها به سکهایشان اجازه حرکت بدهند در زمین پیش آمده بودند. بدین ترتیب هنگامی که اوریون علامت داد به سادگی راه بازگشت آنها را به سرزمین پریان سد کردند و غرش در در دشتهایی که از آن انسان هاست به تعقیب آنها پرداختند. و شب بر تاخت آن حیولاهای مغرور و سگهای مسموم شده با آن بوی شگفتنگیز و جنهای غران و پرجستخیز فرود آمد. و هنگامی که زاخچه بر فراز بلند ترین های ارل مماس شدن آفتاب سرخ را با دشتهای های یخزده دیدند، اوریون به همراه سگها و جن از تپه پایین آمد و همانطور که یک شکارگر اسب شاخدار می توانست آرزو داشته باشد، سر اسب شاخداری را با خود میآورد. کمی بعد، سگ‌های خسته اما شاد در لانه هایشان چون زده بودند و اوریون در بستر بود، و در همین هنگام همه جنها بجز لورولو برای نخستین بار سنگینی و فرسودگی گذر زمان را حس کردند. اوریون و سکایش تمام روز خوابیدند، بیان که به چگونگی یا علت خوابیدنشان اهمیت بدهند. اما جنها آشفت خوابیدند و به امید اندک گریزی از خشم زمان که می ترسیدند یورش خود را به آنها آغاز کرده باشد تا جایی که می توانستند زود به خواب رفتند. و در غروب همان روز که سگها، جنها و اوریون هنوز در خواب بودند، شورای ارل دوباره در کارگاه نارل تشکیل شد. دوازده مرد پیر از کارگاه به اتاق درونی آمدند، دستهایشان را به هم میمالیدند و لبخند میزدند. از سلامتی و باد تند شمال و خشنودی از پیشگویی هایشان سرخ شده بودند. چون سرانجام همه پذیرفته بودند که فرمانروایشان روایشان جادوین است و رویدادهای شگرفی را در ارل پیش بینی می کردند. نارل به دیگران گفت همشهریان آیا سرانجام نیکبختی به سراغ ما و در ما نیامده است؟ ببینید چگونه همانطور شده که مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بودیم؟ همان گونه که همه میخواستیم فرمانروای ما یک فرمانروای جادوین است و موجودات جادویی از آنجا به سراغش آمدند و همه از فرمان او پیروی می همه به جز گازیک گوشت فروش گفتند چنین است. ارل کوچک و کونه و دور افتاده و در دره ژرفش منظوی بود و تاریخ ندیدش گرفته بود. آن دوازده مرد دوستش داشتند و میخواستند مشهورش کنند و اکنون از شنیدن سخنان نارل که میگفت کدام روستا همانند اینجاست؟ خوشحال شدند و گازیک هر چند با دیگران خوشحالی میکرد در یک لحظه مکس شادمانی آنها برخاست و گفت موجودات خریب بسیاری از آنجا به روستای ما آمدند اما ممکن است چیوه های آدمیزادها، و دشتهایی که میشناسیم بهتر باشد. اوت و ترل او را ریشخند کردند. همه گفتند جادو از همه چیز بهتر است. و گازیک دوباره خاموش شد و دیگر صدایش را برخلاف میل آن همه بلند نکرد. و شراب دور چرخید و همه از اشتهار ایرل گفتند و گازیک خلقش و حراسی را که در آن بود فراموش کرد. تا دیر هنگام شب شادی کردند، شراب خوردند و به راهنمایی مهربانانه شراب تا سرحد جایی که چشمهای انسان می تواند ببیند به درون سالهای آینده نگریستند. اما شادمانی آنها در سکوت و صدایشان آهسته بود تا مبادا نجات دهنده صدای آنها را بشنود. چون خوشنودیشان از سرزمین هایی می آمد که از تصور رستگاری به دور بود، و آنها اعتمادشان را به جادویی سپرده بودند که همان گونه که خوب میدانستند هر آوای برخواسته از زنگ نجات دهنده در شامگاه آن را نفرین میکرد. و دیرگاه، سپازگذار جادو و با صدایی آهسته از هم جدا شدند و نهانی به خانه بازگشتند. چون از نفرینی که نجات دهنده بر اسب شاخدار فرو خوانده بود میاسیدند. و نمیدانستند نام خودشان هم مشمول یکی از نفرین هایی که بر موجودات جادوی فروخوانده شده بود خواهد شد یا نه. و روز بعد اوریون باز هم به سگهایش استراحت داد و جنها و مردم ارل خیره به یکدیگر نگریستند. اما روز بعد اوریون شمشیرش را برداشت و گروه جنها و کلیه سگهایش را جمع کرد و همگی دوباره از تپه ها گذشتند. تا بار دیگر به مرز شیری شگرف بروند و در کمین اسبهای شاخداری که شامگاه از میان آن میآمدند بنشینند به بخشی از مرز دور از جایی که تنها سه شب پیش آشفته بودند رفتند و اوریون توسط جنهای پرجست و راهنمایی میشد چون آنها اقامتگاههای اسبهای شاخدار تنها را خوب میشناختند و به زمین با عظمت و سکوت فرار رسید تا آنکه همه جا همچون شفق تار شد و هیچ صدای پایی از اسب شاخداری نشنیدند و هیچ برقی از سپیدی آنها ندیدند اما جنها اوریون را خوب راهنمایی کرده بودند چون درست هنگامی که داشت از شکار آن شب نامید امید می‌شد اسب شاخداری بر حاشیه شرقی شفق ایستاد جایی که دمی پیش هیچ چیز نبود کمی بعد آهسته از میان سبزه های زمینی چند گام به پیش و به میان دشت انسانها آمد. یکی دیگر هم آمد و او هم چند گام پیش آمد و سپس پانزده دقیقه زمینی ایستادند و تنها گوشهایشان را تکان دادند و در تمام این هنگام جنها همه سگ ها را در زیر پرچینی از دشت هایی که میشناسیم شناسیم ساکت و بی حرکت نگاه داشته بودند. انگامی که عصب های شاختار سرانجام به حرکت درآمدند، تاریکی همه شکارگران را پنهان کرده بود. و درست، انگامی که بزرگترین اسب شاهدار به اندازه کافی از مرز دور شد، جنها سگها را رها کردند و با فریادهای لرزان ریش خندامیز به همراه سگها عصب های را تعقیب کردند و همه از بریده شدن سر مغرورش یقین داشتند. اما ذهنهای کوچک و تند جنها هرچند از زمین بسیار آموخته بودند، هنوز بینظمی ماه را نفهمیده بود. تاریکی برایشان چیز ای بود و خیلی زود سکه را گم کردند. اوریون در اشتیاقش برای شکار شب مناسبی انتخاب نکرده بود. هیچ محتابی در کار نبود و تا بامداد هم نمی آمد. او هم خیلی زود عقب افتاد. اوریان به سادگی جنها را جمع کرد که شب سرشار از سر و صدای گوشخراش آنها بود و با شنیدن صدای شیپورش آمدند اما هیچ سگی با شنیدن هیچ صدای شیپوری آن بوی تند جادویی را رها نمیکرد روز بعد همگی خسته بازگشتند اسب به را گم کرده بودند و شامگاه بعد از آن شکار هنگامی که هر جنی سگ خودش را تمیز میکرد و غذا میداد و تودهی کوچکی کاه آماده میکرد تا سگ بر آن بخوابد و موهایش را نوازش میکرد و در پاهایش خارها را میجست و خار و خاشاک را از گوشهایش بیرون میآورد. لورولو تنها نشسته بود و که هوش کوچک و تیزش را ساعتها همچون نور سپید اندک شیشههای گداخته بر یک پرسش متمرکز میکرد. پرسشی که لورولو در آن شب ژرف در آن فرو رفته بود، این بود که چگونه میتوان به همراه سگ ها اسب شاخداری را در تاریکی شکار کرد و در نیمه شب نقشه ای روشن در ذهن پریان اشکل گرفته بود سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی